در کس نمی بینیم یاران را چه شد دوستی که آخر آمد دوست داران را چه شد آب حیوان تیرگون شد خضر فرخبه کجاست خون چکید از شاخ گل باد بحاران را چه شد کس نمی که یاری داشت حق دوستی حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد لا از کان مروّت بر نیامد سال سال‌هاست تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار مهربانی کی سر آمد شهریاران را چه شد گوی توفیق و کرامت در میان افکنده‌اند کسب میدان در نمی‌آید سواران را چه شد صد هزاران گل شکفت و بنگ مرگی بر نخواست اندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد زهر سازی خوش نمی سازد مگر اودش بسوخ کس ندارد ذوق مستی میگو ساران را چه شد حافظ اصرار الهی کس نمی داند. خموش از که می که دوره Vouz garan ra chechou